سحیفه معرفت شرح دعای هفتم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدیه گرمارودی جلسه دهم. ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا و آله تيبينا الطاهرين المعصومين لاسی ما بقیت الله في العرزين با توجه به دعای هفدهم از صحیفه سجادیه از دید مولایمون امام سجاد علیه السلام این بحث رو با هم پی گرفتیم که عواملی که نمیگذارد ما زندگی انسانی داشته باشیم رفتار و حرکات ما را از حالت انسانیش دور می کند. اینها رو بشناسیم و نحوه از بین بردن و زدودن این عوامل رو بدانیم قسمتی که تا کنون گذشت این نکات رو امام سجاد علیه السلام به ما تذکر دادن که از خداوند بخواهیم توجه پیدا کنیم شیطان وسوسه می کند شیطان هوای نفس ما را تحریک می کند شیطان در درون ما نفوذ می نماید تا ها را ضد ارزش جلوه دهد و باطل را در نظر ما زیبا جلوه‌گری کند در اثر این امور شیطانی ما علاقه و حب به ضد ها پیدا کرده در نتیجه اونگونه حرکت کنیم راهایی را حضرت در مبارزه با شیطان به ما نشون دادند که آخرینش رو که چند جلسه گذشته با هم بحث کردیم محبت پروردگار و کوشش در ایجاد محبت حضرت حق بود در ادامه این فرمایش امام سجاد علیه الصلاه و سلام دعا رو اینگونه گونه پی می‌گیرند اللهم صل علی محمد و عنا ببعض یه نقطه ای که حتما باید بهش توجه کنیم اینه در اکثر جاهای دعاهای صحیفه سجادیه از شخص امام سجاد علیه السلام این سلوات ذکر شده نه تنها در اول دعا در بسیاری از دعاها در هر فرازی از دعا یک بار این سلوات تکرار می شود آخر دعا باز هم سلوات تکرار می شود علت چیه؟ ما در روایت داریم یکی از به ترین دعاها سلامات بر پیامبر و آل اوست در قرآن کریم آمده است یا ای الذین آمنو صلوا علیه و سلم تصدیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ای الذین آمنو صلوا علیه و سلم تسلیما ملائک پروردگار بر پیامبر صلوات و درود می‌فرستند یا ایوها لزین آمنو کسانی که ایمان آوردید شما هم درود بفرستید در روایات شیعه و سنی متفقن آمده است وقتی از پیغمبر خدا سوال کردند یا رسول الله چگونه سلوات بفرستیم در این روایات مفصل آمده است که پیغمبر خدا فرمودن سلوات ابتر بر من نفرستید سوال شد یا رسول الله صلوات ابتر چیست فرمودند صلواتی که مرا ذکر کنید و آل مرا ذکر نکنید همان گونه که صلوات بر ابراهیم فرستاده میشد و آل ابراهیم باید ذکر میشد در صلوات بر من آل مرا هم حتما ذکر کنید شافعی رئیس و پیشوای فرقه شافعیه همین مطلب رو به شعر درآورده میگه یا اهل بیت النبی بکمون فرز من الله في القران انزله كفاكم في عظيم القدر انكم من لم يصل عليكم لا صلاه له میگه اهل بیت پیامبر این فضیلت و ارزش برای شما بس که شما در قرآن یا اهل بیت نبی انكم یا ای اهل بیت پیغمبر شما کسانی هستید فضیلت شما این بس که حب خب شما فرز من الله فی القران انزله حب خب شما را خداوند به عنوان یک فریزه در قرآن نازل کرده اشاره به آیه شریفه از اسالکم علیه اجرن الا المبدته فی اما در بیت بعدی کفا فی عظیم القدر من لم یصل علیکم لا صلاه له این فضیلت برای شما کافی است که طبق آیه قرآن کسی بر شما صلوات نفرستد او انگار نماز نخونده است و خداوند صلوات شما را حتی در نماز لازم شمرده است حالا چرا صلوات بر پیامبر اینقدر ارزش دارد و آل او و امام سجاد علیه السلام در همین دعا میبینیم هر چند فرازی از دعا که میگذرد یک بار امام این سلوات رو ذکر می‌کند ببینید ما همونطوری که موظفیم نسبت به پروردگار عالم شاکر باشیم شکر نعمت به جا بیاوریم و قرآن کریم هم دستور میدهد که اما به نعمت ربت کرد ها رو ذکر کنید توجهش پیدا کنید و اگر نعمتی که خدا براتون قرار میده لا ان شکرتم لا ازیدن نکم و لا ان کفرتم عذابی لشدید اگر شما کفران نعمت کردید عذاب الهی برای شما خواهد بود و عذاب خداوند هم شدید است چه نعمتی از این نعمت بالاتر که انسان را به خدا برساند انسان را با خدا آشتی بدهد انسان را محب خدا بار بیاورد در فراز قبلی دعا با هم دیگه خوندیم دو سه جلسهم بحث کردیم که یکی از مهمترین عاملی که سطر و ردمی برای ما درست میکند یعنی مانع و هجاب و صدی درست میکند که شیطان نتواند این صد را بشکند و به ما حمله بر شود این محبت خداست حالا کسانی که ما را محب خدا بار میآورند این چقدر ارزش داره و لذا قرآن کریم در مقابل تمام نعمتهایی که خداوند به ما داده منت برای او معین نکرده سریح قرآآن میفرماید و این تعود دو نعمت الله لا تحسوها شما های خدا را بخواید بشمورید نمیتونید این همه نعمت از در و دیوار خداوند برای ما قرار داده به قول سعدی از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید هر نفس که فرو می رود ممدد حیات است و چون برایت ذات پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم اینا همه درست در جای خودش اما قرآن کریم برای این همه نعمت ها که خود فرموده بخواهید بشمرید نمیتوانید منت نگذاشته یک جا کلمه مننه کار برده لقد منن الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا وقتی عامل هدایت قرار داد رسول آمد که ما رو هدایت کنه ما رو به خدا برسونه خدا میگه من نه من نه در زبان عربی یعنی نعمت بسیار بزرگ یعنی در مقابل وجود شما در مقابل جان شما در مقابل عقل شما در مقابل دل شما در مقابل هرچه و هر چه که در این عالم هست که نعمت است و بخواهید نمی نمیتوانید همه در یک کفه ترازو اما نعمت هدایت و ارشاد و رسالت است که با بقیه قابل مقایسه نیست خب مگه ما بنا نیست شکر نعمت بکنیم رسالت نعمت عظیم الهیه اونم مقام رسول الله که خاتم پیانبران است سید الانبیاء و رسول است ما نسبت به این مقام نباید شاکر باشیم شکر این نعمت نباید بکنیم لذا صلوات بر پیغمبر درود و تحییت بر پیغمبر سپاسگزاری ما را نسبت به این نعمت داره نشون میده یعنی خدایا اگر ما داریم بندگی تو را میکنیم خدایا تو را میشناسیم داریم دعا میکنیم مناجات میکنیم به در خانه تو میایم از تو درخواست میکنیم این همه آوازه ها از شه بود رسول بود که ما رو آشنا کرد پیانبر بود که ما رو از جهالت در آورد اون فرستاده تو بود که ما رو به سوی تو کشون ما لذا فراموش نمیکنیم داریم قدردانی میکنیم و قید آل رو هم به همین معنی. باز از این جهت دقت بفرمایید وقتی ما موظفیم نسبت به نعمت ها شاکر باشیم خداوند هیچ نعمتی رو مننت روش نگذاشته مگر نعمت رسالت را که عرض کردم من نه یعنی نعمت عظیم لقد منن الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا را فرمود اما با وجود این نفرمود با رسالت و بعصت پیغمبر هوا لذی بعصف الامیین رسولا لقد من الله علالمؤمنین از بعصفیهم رسولا هیچ کدومو نفرمود که نعمت به حد نهایی و اتمام رسید ولی یک جا خداوند می الوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی با توجه به بحث ما که هم بنده داشتم هم دوستان ما بحث کردند تو کتابا مفصل خونده اید اگر لازم باشد باز میشه این رو بحث کرد این اتمام نعمت در رابطه با نصب امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه الصلاة و السلام است پس امامت اتمام نعمت است رسالت مننه نعمت عظیمه پس صلوات درود و قدردانی و تحیت ما نسبت به مقام نبوت و ولایت اگر کسی در صلوات آل را ذکر نکند، رسول را پذیرفته ولایت را قبول نکرده. لذا پیغمبر می‌فرماید این چیز این صلوات ابتر و بر من صلوات ابتر نفرستید. پس ما در اول هر دعا این تشکر و سپاسگزاری رو داریم، همونطوری که به ما میگن وقتی دعا می کنید مده خدا کنید، حمد خدا کنید. صفات خدا رو به زبان بیارید یا الله یا رحمان یا مالک یا دیان یا زل جلال و اینا رو بیان کنید همون طور هم صلوات بفرستید چون در صلوات آنانی که ما را به خدا آشنا کرده و راه یادگیری دین رو برای ما هموار ساختن خدایا ما از اینا شاکریم اینا کیا هستند پیانبر و آلش لذا میگیم اللهم صل علی محمد و عاله بعد از این بیان امام علیه السلام باز دعاشونو ادامه میدن وشغل هو انا به بعض اعدائک خدایا مشغول کن او را او را سخن در مورد شیطانه شیطان رو مشغول کن انا از ما یعنی <تصفح> ای براش درست کن که در اثر اون مشغله از ما قافل بشه این مشغله رو مشغول شدن رو به بعض اعدائک و بعضی از دشمنان تو خب منظور چیه مشغله سرگرمی و کاری است که انسان رو وقتی به خودش مشغول میکنه این اشتغال و این مشغول شدن و این سرگرم شدن به گونه ای می شود که گاهی انسان یا هر موجود دیگر در اثر این مشغله از چیز دیگری ممکنه غافل بشه و بی توجه بشه. ما در مورد خودمون این مثال رو ببینیم. الان توی این اتاق نشستم هیچ کار و مشغله ای ندارم. چه بسا در اثر این بیکاری و این بدون سرگرم بودن هر سر و صدایی نظر منو به خودش جذب کنه به همین جهت میگن اوقات فراغت رو پر کنید چون یکی از عوامل لغزش و گناه اوقات فراغت داشتنی نیست که مشغله خوبی در آن ایام فراغت برای انسان قرار داده نشده باشه خود بیکاری و فراغتی که مشغول به یک کار نشدن زمین ساز لغزش و آلودگی میشه ولی اگر بنده تو این اتاق الان مشغولی کاریم کاری هم، شنان سرگرم این کارم؟ حتی ممکنه دو نفر صدا بزنن متوجه نشم یا صدا میزنن متوجه میشم. از من درخواست میکنن بیاید فلان کارو با هم انجام بدیم. میگم ببخشید من فعلا مشغولم و شرایطم اجازه نمیده. بگذارید این کاری که الان دارم به جایی برسونم. پس مشغله انسان رو یا هر موجودی رو با اون چه که الان با اون مشغوله سرگرم میداره. شیطان بیکار نیست همیشه مشغوله مشغله شیطان چیست؟ طبق اعتقاد ما و شواهدی که داریم گمراهی و زلالت هست شیطان تمام سرگرمی و مشغلش اینه که انسانه ها رو از عبادت خدا باز بداره بندگان خدا رو از خوب شدن دور کنه به همین جهت در روایات ما هم آمده است وقتی که شیطان افرادی را اونچنان به گمراهی زلالت کشون که دیگه خیالش راحت میشه که اونا از این راه بر نمیگردن و هدایت نمیشن میگه خب خیالم از اینا راحته اینا رو را رها میکنم حالا میرم سراغ دیگران به تعبیر یکی از بزرگان اهل دل دزد سراغ خونه خالی نمی روید. چون در خانه خالی چیزی نیست تا دزد بخواد دزدی کنه ولی خانه ای که در او چیزی باقی است دزد حوسه این که برود و دزدی کند هست. ابلیس دزد ایمان است. شیطان دزد اخلاق نیکوست. عوامل شیطانی دزد ارزش وجودی ماست. تا زمانی که در وجود ما این ارزش وجود دارد شیطان نیروی خود را بسیج می کند که اینها را بدزدد و با خود ببرد. آیا شده ما از ترس دزد اساسی لازم رو در خانه نیاوریم یا میآوریم اما درها رو محکم قرار میدیم دزدگیر میگذاریم که دز راه پیدا نکند ما باید در خانه دلمون ایمان اخلاق ارزنده صفات و خصوصیات نیک رو ایجاد کنیم ولی راه دستبرد شیطان رو هم ببندیم و نگذاریم شیطان نفوذ کند یکی از این راهها به بیان امام سجاد علیه السلام اینه که از خداوند بخواهم وشغل هو انا به بعض اعدائه خب شیطان که میخواد مشغول باش خدایا کمک کن زمینه ای پیش بیاد در اثر این زمینه شیطان مشغول دشمنانه تو شود دیگه سراغ ما نیاد از ما غافل بشه ای در اینجا در خراهمیت منظور اینه که یعنی بل اجبار خدا این کار رو بکنه نظام الهی قبلا هم از کردم در مورد ما انسانها نظام اختیار و انتخابه اگر بنا بل اجبار شود که اصلا شیطان رو خدا خرق خب نمی کرد هوای نفس رو هم در وجود ما نمی گذاش. ما هم یه دسته از موجودات بودیم مثل فرشتگان که راه عبودیت رو می کردیم خود خدا هم در قرآن فرمود لَوْ شَأَلَ اللَّهُ لَجِعَلَكُمْ أُمْمَةً وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَكُمْ اگر خدا میخواست که ما رو اونجوری قرار میداد ولی میفرماید نه من شما رو به گونه آفریدم انتخاب داشته باشید، قدرت اختیار داشته باشید، سبقت بگیرید در این میدان مسابقه جلو بیافتید پس اینکه که خدا یا شیطان را به دشمنانت مشغول کن تا در اثر مشغولیت به اونها ما در امان بمانیم این آیا معنی جبر میدهد؟ نه ما یک شرک داریم، کبر داریم، جبر داریم، توحید و کن. این پنج رو باید دقیق بشناسیم شرک خدا رو قبول داریم، چیزای دیگر رو ما اثر قرار میدیم در کنار خدا بل استقلال. این شرک چبر اینه که بزرگی و عظمت پیدا کنیم خودمونو در حدی ببریم که بگیم ما چنین چنانیم. جبر اینه که هیچ اثری برای خودمون قائل نباشیم بگیم همه کارا رو با خدا بکنیم. توحید اینه که منشه اثر خدا را بدانیم ولی به وزیفهی که خدا برای ما معین کرده قافل نشیم. توکل با توحید و عقیده ضد جبر به خدا تکیه کردن. با مثال عرض کنم. اگر اینجا ای باشد بنده بخوام در این مزرعه کشت و زر کنم یک زمان شرک میبرزم زمین رو شخ میکنم میگم خدایا منی که شخ کردم منی که مهندس کشاورزی بودم و وارد بودم منی که کود و سم به موقعی آوردم حالا دیگه من حاصل خوبی دارم این شرکه چون من چه کاره است؟ اگر خدا نخواد همه اینا خنسا میشه کبر چیه؟ به خودم که انقدر متکی باشم که این تکی بودن من همین کبر سر از اون شرک در بیاره اما جبر چیه؟ بگم خدایا همه کارا دست توه پس لازم نیست من زمین شخ کنم و آبیاری کنم تو بخواهی حاصل رو به من میدی اینم خداوند میگه من اینجوری نخواستم لیسال الانسان الا ماسا کل نفس بما كسبت رهينه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم و آیات دیگه رو توضیحات مفصل خودش اما توحید چیه بگم خدایا منشأ تویی سرچشمه تویی قدرت همه به دست توست الا ما خلق الله فهو باطل عظمت الامور تلرن به یده الا ما خلق الله فهو باطل همه قبول در جای خودش اما خدایا تو معین کردی من در این مزرعه اگه بخوام حاصل بردارم لیسل الانسان اللہ ماسه آباد کار کرد من کارم رو میکنم اما تو نخوایی نمیدی این میشه توحید توکل چیه؟ با این توحید تکیه بر خدا کنم یعنی بگم خدایا من شد تویی ولی کارم باید من بکنم با توکل زانوی اشتر ببند معناش این میشه همین رو در رابطه با شیطان مطرح میکنیم خدایا من به خودم نمیت بگم منم که با شیطان در میافتم، منم که شیطانو گول میزنم سرگرم دیگران بشه این کبره و این کبر ممکنه سر از شرک در بیاره یا از اون طرف جبر بگم خدایا تو بخوای نمیذاری شیطان هیچ کاری بکنه من هیچ کاری نمیکنم تو شیطانو دور کن اینم جبره مثل این که خدایا در این مزرعه تو بخوای حاصل میدی و خودش گفته نمیخوام خدا فرموده نظام قرار دادم ان الله لای و غی رو ما ب قومن حتی یا غی ما بن فسسهه. پس برخورد توحیدی و توکل در رابطه با شیطان چیه؟ خدایا اونی که مربوطه به منه من زحمت میکشم. کارو میکنم ولی تو باید کمک کنی. از تو میخوام کمک کنی شیطان مشغول دیگران بشه به بعض از اعدا حالا اونی که دشمنی تو رو داره میکنه شطان هم اللهم مشغل ظالمی به زالمین وجعلنا بینهما سالمین قانمین ما رو بین اینها سالم قرار بده اونا به جون هم بیفتند ظالمین با هم دیگه مشغول باشن فعلا از ما غافل بشن این خودش یک دعاست چون دعا خاست ماست از خداوند، همین خاست ما وظیفه ماست، عمل ماست، لذا داریم میخواییم، مثل که شخم زمین وظیفه ماست، ولی خدا اگر نخواد زمین حاصل نمیده، برای این مبنا اگر ما توجه پیدا کنیم، تلاش خودمون رو انجام بدیم، انایت رو از خداوند بخوایم، به قول معروف از تو عرکت، از خدا برکت یکی از تلاش ها دعاست مناجات رابطه با خدا برقرار کردنه. حالا داره با خدا رابطه برقرار میکنه به این معنی اللهم صل علی محمد و اله وشغل هو عن بعض اعدائك خدایا به پیامبر درود میفرستند با آل پیانبر درود میفرستم چون اونا بودن که منو با تو آشنا کردن اونا بودن که راه رو به من نشون دادن و شیطان رو به من شناسندن تا گولشو نخورم حالا از تو میخوام شیطان رو به دشمنانت مشغول کنی که دست از سر ما بردارد و ما بتوانیم در راه عبودیت تو حرکت کنیم و جلو بریم مثل اینه که مثلا در مثل مناقشه نیست آدم بگه که کسی که میتواند این سگ را فعلا. با یک موجود دیگری در بیاندازد که به من حمله نکند خاست خواست, خواست اوست اما اون کس که سگ رو متوجه یک عامل دیگر می کند کمک اوست در حق این که امیدوارم خداوند دعای همه ما را به اجابت برساند که موفق شویم دعای مستجاب داشته باشیم خداوند ما را به حال خودمون رها نکند و سلام علیکم